حافظ همینون دشمنم هم که از شروع محبوب به خلق همین بطا آن بطاق آغذری گر نبا افصاق قانونشان که فوز از بره بستاق دامش پیش ریزند از خرید بعد اینکه شوحاق یه, مده یه در مده تردوسی گفت بود دو یه مقداری در مده تردوسی شنیدم از شوحاق الملک رو گشت حب از آن خواندن شعرش گفتن جری گفت شاعر شطری در سال ماغ و استاد تاریخ نیکا یت چون این کو بنگری این تاریخ این دو بیت 330 یا به سالی کمتر از مادر فزار 329 یا 330 یا به سالی کمتر از مادر فزار 765 تر داغاق دستان و اسپرین نظم شاهنه شد. در عوام 400 ست شد اسپرین شهنه هاش یازده ساله بگرد شد عمر شاهر اسپرین برد سی پنج در کتاب خیوش رنج ماند از رنجی چنان گنجی بدین دین زنده شد ایدان از این شهنه گرچه شاعرش خونه دل ندید از بخ الا مدبری جود محمودی در آغاز جهان دیدیش بود چون پزم شد گنج راودی رفت و آمد محصری ضرب کف زیرا تا فرماگان بودم بسته چون سکه دل بر نقش ضرب و بعدم راجب هزاره فردوسی مبرای هزار فردوسی ساخته و نیه که حالا تا امروز که مثلا تجریز کردن اینجا اردوسی یونسیو پنج سال رو تازه پس از سالش بوده 69 تا 665 620 تا 655 سالش بوده که تازه شروع میکنه به نظم شاهنامه و قبل از اونم هم تغییر مقدامش بوده یونسیو سال هم کار میکنه که 25 سالش شانه مرغ، تمام میکنه نظم داستانهاشو، ده سالی گرانتو برای روحیشو و توندن مقدمات و ارتباط دادن مطالب به هم و ساختن مقدمات هر فصل و هر داستان و ساختن مقدمه اصلی کتاب و تدوین کردن به طوری که قرار دو بکنه که تا تا 24 سال تا 5 تا هنوز دقیق چه چهار حال بکنم که میگه یه چیه من نمیدونم من به نام اون چی این حاصل عمر این مرد این شاهنامه بوده و بعد هم آخر عمره سن 80 سالگی برای یه ذره فرمه و یه ذره جو و یه ذره هیزون مهم کرد نمانده نه نه چیزی دست تا دو دست دو من آهو گره توی دست یه سال می رو گره ای با بلند بگی. مرا مستمن چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خار بزاشتی مرا هرگز نه پروردی ها چه پروردرودی نه ولی همون وقت انصوری از زیم دیگتان می و از زر آلات خان می ساخت چنین که از زیم زد دیگتان به زر ساخت آلات خان ها باید که محصول اون شهری که دفعی دیش مویدیم میگه کنون کهش از آن سی نیست و از آن دیگه دام کهش نیست اونطوری همینه اونها رو داشت بلیه انگیز اونطوری نیست و احکمالاً این مرد در اون حالت گشنگی خوردن اون وقتی این رو میدید این رو میدید ارسان هم یک نکته یه اون این است که نظم شاه نامره هم یکیش از فردوسی گفتم که اصلا مصنوبی محلوزی که این کار کرده بود یکی بیگر هم بوده که او اثرش سرش مونده و او تحریقی است تحریقی شاعر در حوضی به هزار, هزار و, و چند بیت. از شاهنامه رو ساخته بود درباره ترلوزشتی در گشتاست و دینه که در جوانی به دست بندهی کشته شد فردوسی میگید که جوانی شای بعد یاد بود عبابت همیشه به فیکار بعد این رو میاره در شاهمامه میگه چنین دیر گوینده یک شب خواب البته اعتمالاً میخوابارو میساختن خود فردوسی هم چند جا خوابایی داره که پیداستی این کام چنین از یعنی از بزلاب کلک های داستان سرایی به چنین دیر گوینده یک شب خواب که یک جامع نیداشتی این گلا دقیدی زجایی پدیدامه بران جامعنه‌ای ها، دادی به فردومتی آواز دادی که نهی ما خرجه‌زا این قابضی که که چه و چه و اردان در دوره پاچایی هستی چی بعد می‌گه زدگوشتاست و عرجاست به تیهزار بگفتم سر آمد مرا و جزار تونی زربیاوی وخیلی مکن اینو برده بیارو بعد می‌کنم این شعر آوردم اگرچه نفسم دیدم من خریشم اینکه نگه کردن من از گفتست آمدن، من از درست بیتنام من درست آمدن چه تبینده آفوچ و آقربان، من این نامه خوزگوان دهان گرده ما اومد زی خوردن به از آن بهتناس آس خواهم و به احتمال قدی، اولا که خب نظار بایت دقیقی محصول مونده و همه کس می الان بخونه و با شاهنامه مقایسه بکنه قابل مقایسه نیست، یعنی احتمالاً فردوسی این رو آورده برای اینکه نشون بده که اگر شاعر دیگری این شانه ها رو یه چنین چیزی از آب در می اومد و به طور رهتم هیچ کس دیگری اون کسانی که میگن که خب کاری نکرده که یه تو به های بوده برشن نهز هیچ آدم دیگری در طول تاریخ ما نبوده که اگر داستانها رو به نهز می و این که را جاب سهم از این فردوسی در درکار داره این کرده بعد هم اون در بیتای دقیقی رو آورده برای اینکه نشون بده و خود مردم ببینن در طول تاریخ این لطفا به کنید من داوری استادم مردم بری و زمان و دیگران رو در شیر برشتی به فردوسی به نظرم اینجا آوردم چیز کنم آوردم لد. ارز کنم که نوشتم اینجا که استاد توس شعر دنگی را نمی از آن انتقاد می و یاد کسی که تبیه چون آب روان ندارد بهتر از اصطوری نام کسی دست ندارد با آن که جای بحث تفسیدی در این باب نیست اما بغیره تمام محققان ساهد نظرم از جمله استاد شاد روان بعد زمان پروزنفر در سخن سخن بره حق با و نه شعر دقیقی که شعر هیچ شکر از پرای اندگان و هماتهای ملی و دینی و تاریکی به پای شعر فردوسی نرسیده بلکه به حریم آن نیز نزدیک نشده از این روی انتقاد فردوسی از شعر دقیقی را نمیتوان از خود ستایی شاعرانه و گذافه عاری از حقیقت بندام اما فردوسی که شعر دقیقی را نپسندیده چرا آن را در شاهکار بزرگ نیش آورده نطقه‌ای که فردوسی در معخره‌ی خود دادن تصویم کنند جواب همین سؤال است که فردوسی از آوردن شعری که خود نمیپسندیده در مدنش آنامه هیچ چه نظری داشته بهتر از معخره فردوسی رو ببینیم چون این نام افتاد در دست من به ماهی گراهیم بشد چست من نگه کردم این نظم و سست آمدن بسی به ناتن درست آمدن من این ظن بگفتم که تا شهریار به دامت توخن گفتن نابتا دو گوهر بودین با دو گوهر پروش خنون شاه دارد به گفتار گوش چون به این گونه باید گفت مگوی دومتون تب با رنج جو چو بند روان بینی و رنجتن تن به کانی که گوهر نیابی مکن چو تبین نباشد چو آب روان مبردست زینامه خودجوان دهان گرفه ما آمد زخوردندهی، از آن فهد ناساس و بعد، البته بعدش چیز میکنه که گرفتم به گوینده بر آفرین، اینه حق بشو باز ادا میکنه که پیوند راه, راه دادن برین، این شروع دادنه است اگرچه نفعی وقت، جز اندکی، زر از موز از هزاران یکی همان اون را راه برد، که چام چاوی ابرگاه بعد. همی یا از مهتران هر جو گنج به سرانجام رو برگشته شد که دست بند بر شد خدایا ببخشا گناهت برا دوی سال در هرشت جاهه کنم کنم که چند که ارز کنم هیچ کس بعد هم نرسیدن توش از هم یک است هچ واج من نظمی قبلش داشته، من بعدش و یکی از علت‌های جادیدنس این کتابی نوشته همین. یه ذره رنده رژیم نفس بکشم بعد نفس بکشم. بعد یک چند کلمه راجع به این تو او حالا ما مطلبی که من می‌خوام بگم چون این توهاست من دیگه زیاد راجع بهش حرف نمی‌زنم. من همینا بخونم. من خیلی کم نگم و برد برد زندگی هست و او این هست که تو این شاهنامه چی نوشته؟ کتاب که میجینی میبینید بر حود به پنجا و دو هزار این چیه جواب این هست که هر کتابی که نوشته میشه احیاناً نه در ایران که شاید در همه دنیا یه داریم مقدمات بروشیم در ایران هم, هم. در ایران فقط یه دونه کتاب که بی, بی هیچ مقدمه شروع میشه بشنوین نه چون شکایت می‌کند از جدایی‌های باید برمزن. و اله تمام کتاب‌های دیگه اولش حمد خداست بدون شک بعد نعت پیغمبره حتی اگر خارجی مذهبم باشه یهویی باشه نمونم زرگشتی باشه یا مسیحی باشه پیغمبر خودشون این بیگم در حال نعت پیغمبره که البته گوشتر که مسلمون بودن بعد عرض کنم که چیزه بعد اگه سننی باشه کرافای راشدینه اگه شیه باشه عیمه هست بعد مثلا مطالب مطالب فرقه دیگری هست از قبلی که چطور شد به این کتاب رو نعزم کردن یا نوشتم کی موجب شد بعد تقدیم اون شخصی که میشه بعد مده, او. مده اون مده سپلطان اون با یه سری مطالب دیگری که خود نویسنده یا شاعر فلاح میدونه در مقدمه یعنی پیش از ورود به مطلب اصلی بگیر و همه کتاب شعر و هست بولس مقدمه داره دوستان مقدمه داره همینطور دا شاهنامه هم قسمت اول شاهنامه مقدمه است مختصر نسبتاً شروع میشه با به نام خداوند جام خرد که از این برتر هم میشه بالاتر خداوند نام خداوند جای خداوند روز هم رحمت ما خدا سو برامت پیغمبر است و بعد چون شیعه بوده فرق شیعه هیچ تردید نیست و چه زر قدمای یکی اوست مسلم که مسلم از یک شکی که کسایی مروزیه یه در سال سی سال که دنیا آمده ده سالی از او هم و اما در این که چجور شیهی بوده باز تربید بسیار هست اولین نظریه اظهار شد نابلن بگم که شیعه طقه ها دسته های مختلف داره مفصلتنین بزرگترینش همون شیعه دوازده امامی یا اسماعشری است که جعفری میگن امامی هم میگن امامیه، امامی بهش میگن جعفری هم میگن اسماعشری هم بخش دوبام خرقه دو پنک فاصله از لحاظ اهمیت بعد از اینه شیعه اسماعیی اسماعیی اعتقادات نفصل تو چیده عجیب و غریبی دارن و از جمعه این که همیشه معتقدم که امام حاضر باید باشه ما امام قایب که قایب باشه که چه کار میگرسیم نمیشه امام قایب در به بعد دوره ها یه هفته هایی یعنی هفته آس، بعد یه هفته هیه، بعد یه هفته هیه، و این تا دیامت هم که دیامت خواهد میده عرض کنم که علت این هم که ای شدن اولاً مثلا دوازده امامی و هفت امامی مسئله مهم، اون چه ما هیچ نکردیم تاثیر فوق العاده شدید عدد دوازده و عدد هفتی این ها بسیار بسیار شاخصه بسیار بسیار مهمی است. دوازده و هم یه خود مزرگ بالتاش هفتالو دو, دو. دو هفتالو هم خیلی زیاد بکنم هفتالو دو, دو, دو چه بچه دو, دو تنشهید به یک و، به دو به سه و، به چهارو، به شیش و، به به نو قابل بسنید به هم به 24 و به 36 12 هم به 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قابل بسنید دوبلش بکنید 24 و قابل بسیار بسیار تقسیم هست. و به همین دلیل است مدت های مدید دوستان که رشته بیازی میدونن مدت های مدید اعداد بر مبنای شهست بوده مبنای شش بوده تقسیم دایره بسیستای شهست درجه. تقسیم ساعت بسیست بس دریجه دقیقه شهست سانی شبانه بود بسید و چهار ساعت کنیشو چمان ولی علتش این بوده که او رو خیلی تقسیم فضیر کر و بسیاری مطالب بر مبنای ششه شما بگم ساعت چار و نیم چهار یه ممیز میزنیم سی می ولی بر طبق اون حسابی که بکره اپتدایی رو یاد دادن این میشه چهار ممیز سده هم سده هم ساعت سی سده هم یا سده هم سده همه سده هم یکی ایزد ایفه باها چه هست ایفه هم چی شما میگید سی, سی, سی, سی, سی باید میگه چارمی برای اینکه ساعت و نوشتن ساعت بر برمبنایش هسته تمام محاسب های هندسی و درجه زبایه مسلس و همتار اینات دلیل تصمید هسته عدد چیش و با که عدد خیلی مهمی هست برای اینکه ساده در سطح ممکن مسلس میده از سه زر و سه زادی نزی و خیلی مطاله بیگه تاعدا من بسنه هم دویا میدونم این این است که یک گسد از مبنای فرس میگستن و دوازده اکس قضیه عدد هفت یعنی عدد هفت نه اینکه که عدد اول از تو به هیچ عدد قابل قسمت نیست که هیچ حتی قاعده تقسیم پذیریش هم هنوز پیدا نکرد یعنی الان شما در مدرسه ابتبایی بهتون یاد میدن که اگر عددی آخر زود باشه بود یا سه باشه دو قابل قسمت اگه سه سه ترکن چیزی باقی نمانه به سه قابل قسمت به هم آخر. عدد هفت رو میگنم بینیم با تحصیل کنیم به هفت قابل قسمت هست این قاعده این عدد اول هم هست و به همین لیل عدد مقدس به حساب مده هفت اندام ظاهر هفت اندام باطه هفت سیاره، هفت تراغه هفت تراغه زمین و امثال اینا که مرهوم دکتر یک کتالی درمان عدد هفت و تحلیل در بکر نظامی شاید 500 تا شاید و تا هفت آورده یه دستن هفت و علت هفت امامی شده میشون این بود که گفتن که از این سادر امام شیش میدن که این اسماعیل رو بعد از خودشون تعیین پر می دوزن پرزند مدرد کشن تعییم به عنوان امام بعد. اتفاقاً اسماعیل در دوران پدر خوب بعد اسماییلیه میگن در اراده خدا که بدا حاصل نمیشه خدا که مثل من شما نیست که تحصیمی میگی رو راید از تحصیمیش پشت نمیشه اگر که کار خداست اگر اسماعیل از خدا تقییم شد اینجا عزل نمیشو بشید که نیست عزلش بشید، آر همونه بعدها هم معتقد بند که نه این زنده بود و نمون قایب شد و از هم نرفایی که ما هم این تردید در سیکل هفت باقی اما اسماعیل بیگر رو قدیم که در حتم مسلمان نمیدونستن و ملاحظه روشون گفتم دلیلش هم نبوده است که اینا به معاد جسمانی اعتقاد ندیدن و معاد دو اصول سگانه دین یعنی دین اسلام سه تا از سه تا یکی اقرار به خداوندی خدا یکی اقرار به خیرنبری و خیرنبر و خاطن‌النبیه بودنش یکم اقرار به معاد جسمانی شما با همین تن روز قیامت برانگیسته میشی از خاک و باید بریو حساب کتاب تو به نظر اسماعید یه میمید که این خیلی معقول نباشه بحث میکردن در این باب و گفتم چون ما ها جسمانی اتفاق کردن اینا از این خارجی چون ما هم زیده و اونا هم یه مدتی به خشونت رو آورده بودن چیلکی بدتر و داستانش رو خوندیر بایدن اینجا ا هر صورت بحث های خلصفی کشتن و الان دیگه خابل معنبول همه فرقه در در هند اکثرشون و هنوز هم زندگی مرموزی دارن کسی که خود جامعه و, را و اونم باز رشته های مختلف، یعنی گروه مختلف داره نظاربی هستن، مستعلبی هستن و های مختلف و یه مدتی یعنی هم یه خلافت مفصلی در حسن نشکیلی نام نمخالف های که مدتی تو یه دسته دیگه اهمیت شن از هرسیت های دردت هر های است که توش باشون زیده ابن حسن ابن و دویه زیدی اولا در آن واحد میشه چند امام باشید چه که چه امام کسی علم کافی برای رهبری مسلمین داشته باشه و قیام به هم نم بکنه مصالی اساسی این است که امام بعد به شمشی قیام من مصحب و بیشتر شورشتی از اصلا زیدی داشوند حالا مرداتون در یمن میشونده اولا تا چیزم هستیم از قل در وقتی هدف آدم بزرگ میشه همراهش کم میشه دیگه <متحد> <متحد> چه نه؟ اولا امام حسن ندفت امام دید داشت که امام کسیست که امام حسن اصلا <سؤال> به ساعت شبیه حنوز وقت امام حسن بود که شبیه نشده دوید قاسب هم به خلافت سلام <سؤال> کرده میدن امامت بعد در دوره کلیمی و دوره کاخی و دوره کاخی و علماء و خاندان نوبستی از کاره های تیوریت و ایدئولوژی که امامت حدین چه بکستن ارز کنم که زید میگه امام باید بیان به صرف بکنی و هر کسی هم بیان به صرف کرد علم انداشت امام دیتا شدنم با هم بشن مشتاید مخاص حریده اشت در باره یه بودن فردوسیس یه نظر اچهار شده اول همین مرمون محیق تبا تبایی مقاله اینه بشته و اونجا گفتن که فردوسیس یه زید مرمون محیق که های داشتنا حج کنه یکی این بود که محجور یعنی دنبال عقیقه این بود که این که اصرار زیاد که سعدی عرب بوده اصلا و از قبیله سعد غیور از سعد نه چه نه چه به دلیل سعدی که اسم و از قویبوی ساعت بود و و یا مثلا دوتا خیام وجود تشکیدی که خیام مرجم یک خیام و در مورد فردوسی هم مثال نظر کرده از خدا رحمت چون اون به این بعد از دکتر دفتر از خوزه های درجی عباس اخیران در مجلی ایران نامه مطلب مختصری روشته بود و در سرمقاله مجلی ایران نامه روشته بودم اینجا بکنه که علیمات و اطلاعاتی که در مقدمه زهانان نیده اینا شباهت داره به اصولی که این مطالب فلسفی که اسماعی که های اعتقاد ها بگم که اشماعی یه روشنگی می یه و از جمله چون که برن که جسمانی هزار شبه درش میشه کرد و اینا به احل شون داخل می تو طرف می ولی خب بحثای فلسطی بی کردن و استقلال بی کردن و بار بی کردن بی کردن, بی کردن؟ که آقای زریاب که احتراعات که که در باقی جهان نساید حالا من برای چیه از از آغاز باید که دانی نخست ما... دروست سر مایه گوهران از نخست که دان ز ناچیز چیز آفرید. بدان تا توانایی آمد پدید وز او مایه گوهر آمد چهار براورد بیرنج و بیرنگ دار یکی آتش برشده نا میان باد و آب از بردیل تا نخستین که آتش ز جنبش نمید ز پس خشکی آمد پدید آخر مطالب که در دوزدری اظهار اصحار اقلی دویدونی اینا شباهت داره به اونجور در داره شبهت داره اینا هست و اخیران این در این مجلیه که اینا امان بگیداشت دوست نیران شایستاشم نبیدان من شده به این مجلیه دیران شده به این مصروف دوست رسیار عزیزی در هم درست و هم کلاس منانیگاست در فران خبی و در هر بار میکنه و مرد آلون خاضر در عربیت و عددیت ایسایی دیاب بریزا داره جا. و جا در هر بار که مقاله کردن به بنده در از و مقاله و متخنی و به دقت کرد با توجه دارن همین مقدمه ساهنامه که به همه که و, و, و, و دلائلشون اون جبهتن اگر یه ما خلاه که کار پیلون این مقدمه چون در همه کتاب هست گاهی بعضی کتاب هم معخره هم داره که میگه بله من مثلا اینقدر هم چوشیم پدرم در اومد همچی شد یا این کتاب مثلا این مدتی ما در هر خطایی از این خطایی کتاب بزن, بزن. یا از این که میگذاریم وارد مطلب اصلی من بنابراین بحث ما راجع مطلب اصلی است نه مطلب اصلی مطلب اصلیش به سه نیست. یک بخش ویدود تبدیل یک دهان شامان بخش اصالتی بخش متولیزی بخش متولیزیز. بخش, متولیزیز. بخش, بخش تقریباً دیگر بعد میگم که چقدر حدیف شد چون مهمترین بخش هست آخر همه راجعش که باید بخش دوم، بخش هماسیز، بخش سوم، بخش تاریخی بخش تاریخی در حلیقت از اول ساسانیان شده میشه راجعه اشتانیان تقریبا نیمشونده و این بخش تاریخی بود مقداری افسانه هست مثلا برای دوران بهرام و برای دوران همچیگبان، برای دوران شاپیلی الالداخ، برای دوران اردشی یه سری ها هم در سردولاشون ها وارد شدید ولی کتاب های تاریخ هم این هم در افثانه ها درش هست، از مداریت قربت اسلام، مالا و به هر حال همون ایس بخش تاریخش همون هستی در سببای تاریخ مختلف تواریخی قدیم در دوره اسلامی نوشتی چیز هم این برایت رو با اختلافات خیلی خیلی مختصری می پیدا کنیم در قرار و اخبار مونی کلپورت و سیرینی در تاریخ تبلیف در موزده هم و در تاریخ انجه اسلامی و انطال هست هستیم این بخش تاریخی هم یک د ببخش، ببخشید یک دهم همه شاهنامه بخش بخش تاریخی یک سرکون شاهنامه است شاهنامه بخش وسطیش بخش هم اصافیلیز. که اگر یک سرکون و یک و هم هم جمعانی همیش میشه که اگر شاهنامه رو سی جوز وقتی میکنید سی دیه جز تاریخیه و دیده جز اوش در بحش حالا بحش تاریخی رو من کاموش که همونوش گفتم که چه بوده که لازم که توزید بخش یه و چه فرق دارن برای خیز نمی که انا خرمی بسنیشن با هم و حقیقتم این است که حتی بخش تاریخی هم اینا مثل مثل سبوری مثل سایه و آفتاب. اگر دقیقت کرده سایه یه دفعه خط نیست که باید آفتاق بسیم سایه هست یا شب وقتی نخواد رویز یا رویز نخواد جرد یه مدتی، نیم ساعتی، بزدگیوه اگر جا ها سر باشد پیشتر نه شبه یا نور و سایه و نیم سایه تو همی یعنی بخش اساسی یواش یواش تردیل میشه و بخش این به این که یه بگیم تا پیت 3400 از نه. نه. همچنین که بخش هماسی خورد خورد تردیل میشه و بخشی تاریخی دلیل آخرین پاچهان هماسی دارا و داراب و آخرین پاچهان هرخانشی دقیقاً قابل من دیگه ولی میشون خیلی برای اینکه مثلاً ترشونی که سرجان ملکم در اوایل مرم 19 هم برموزشته دوری رفته بود. بود این این کتیبه ها در زمینش ترجام مرسیم تاریخش سعی میکنه مثلا ایشیشو بسیار میکنه که که تیف و سو هم گلگوش شد اینا یعنی اینا ولی آخری ها شبه هم یعنی کم کم همون که اوانفار دوران با و هماسیه یه آنوزه که و همده هم ندارن برحال اینا افلاً پس خط با خط دوم اینکه بخش اساسی بخش است که بحثی کنید از زندگی. یعنی من نیمه، من نیمه آدم چطور آدم لباس تید قضا چجوری مسکن دارید بعد مسکن اول تو سفاق بود در آب بود بعد اونان دوده چجوری حیبونات رو راحت کردن چجوری کشاوردی کردن آتش چجور مهار کردن فلزاد رو چجوری استخراج کردن کانالگشی رو رو آبیاری و مساعدی زندگی در بخش اساطری مثلا روشنگ می کسید که حالتا شو بیدای که منصف بود این از سعادش محافظه مایی که آدوشنگ سبیدن که و اتفاقا از آتی چند شد می ترسیدن که یعنی علمان شنگ جنگال اینجا آتی چند از این روشتی که نمی سبیدن که مناباری می ترسیدن که با این با یه ساقه ای با یه بر می یادی بردودن این جایی که من اگه پرهوشنگ یه میده که آتش در دیرون با شد. این آتش داشته بیشه هر رفعه کنه هر این مسئله یا میگه جمشید مثلا جامعه رو به طبقات تخصیم کرد منجاستان سرط تشبیرانی 50 سال سرط ساخن سلاح در منجاستان سرط روانق باخندگی کرد منجاستان سرط کنه کنه حتی البته هزاران سال در عالم باقی پیوی کشده ولی مطلبش مطلب پاگذاشتن گذاشتن امسان و این محیمان که دربازه های اینسانیت در بزر شدن و بعد هم مستقر شدن افتالی این قدم هایی که آدمیزار که سوی آدمیزار جازتان کنه تا طرف قرآن بسیار مختصر دوبه بسیار بسیار مهم و اولش هم آدم اصلا فکر نمیتونه بکنه که بزنید. اگر این که باید بیرون باز کنم وقتی اینکه عجب خودت از که تو این و به چیزی روش زمان مدان حالا از آن هرچه اندر خورد تا آخرت اینکه اینکه اینکه عقل وقتی این رو جمله ها رو میارن دیگه نمیوردن که اون چه هم کرده که کرده از آن هرچه اندار خورد کافرد دیگر برده رمز که به هرمزی برنید از این انداره که حاله که به از احمده اما یک دیگه رو بگه که طفن هرچه گویم همه بر بره باق دانشمه رفتن اگر بر برومم جال نیابم که از برشدن نیست حال توانم اگر پاگه خوابتم بره شاق آنه برداره کسی خود شود؟ یک بلند ولم سایه او باز دارد از این نام برنامه شمپیار بماند به تیتی یک یادگار تو این را درو پاس مدن به یک ساند روش نس زمانه مدان از او هرچه چه اندر خورد باخرت دیگر فرار را رمز. بعد شاروی از منصور عبدالرزار و جمع بردن یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرمون داستان پراکنده در دست هر مونفت از اون بهرهی نزد هر بهرد یکی پهلوان بود دهان دلیل و بزرگ و فردمند و راز هجوهنده روزگار نخوز گذشته همه باز. در هر کشوری موبدی ساخر یا ورد ناخرانده بپرستیم کشان از کیان جهان جهانی بزان نامداران و خرکتنهان که گیوتی به آغاز چون داشتن دیگون به چگونه سر آمد به بر ایشان بر آن روز کند بگفتن این شش یک را و گشت به جهان چون از اینشان سپه بعد این سخون دیگه نام برقرمت کن بون چون این یاددار شدن در جهان و رو آخرین که در بعد از این در چون. از دفتر داستان ها و سی همی خواننده خان برن هر کسی این تا اکیه بود جهان دل نهاده بر این داستان این مردم حلاقه نشن جهان دل نهاده بر این داستان همان بخردان میزو هم راستان جوانی بی آمد دو شاق زبان تو من گفتنشون و تب زبان به شعر آرمی نام را گفت از اون شاقان شد دل انجام جغانیش را بود یه بد یاد بود همه ساوه با بد به پیدار بود که دان یه بد جهان شیده نبود از جهان درش یکی شاید وکاکک از اون بردشته شد به دست بود به بردشته شد برفت بود, بود،, بود, بود شد، بر و این نامه ناوقت ما چنان بخت بیدار روی خود کل داستان قضیه است. و ما هم شروع می کنیم بخش کنیم و شش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 به بعد این آقای ناصر بولتر که زفن زبان از هزار این زبان زبان یه قدیبه زنده است بنام در حال نهبه قدیبه ایست زبان هست نکره ما برامون قبله یک خیلی دوستی گفتن که عربی میخواست مگه عربی میخواست بگه اینجا هم است گفتن که دو تا لغت عربی داره قضا گفتی رو قدر گفته گفت احسن خلق گفت گفتن که فقط هم اینا, اینا بعد گفتن که اون خلق گفته بگفتی اون عرب میزنونم اون نه فردوسی میخواست دوغت عربی بیاره نه نمیم فردوسی میخواست داستان از عزم میکنه به زبان روزگار خودش بر این همه مردم بفند و الان هم این توجه الان هم الان اگه شما بریم کسی خبت دارم فیلیم در اون درخان که اصلا سواهیی میشاوریست که در خواهلی بودن درصد یک سیمونی بودن این یکی مشکال بردی سجا نیستم با رو خواهیی دوست که این کسیم از این و هست این از خاص اونجا هست اونجا هم، یه فرده ها اما در اون رو دگارت فردوسی و رو کتابه نسری هم بینه بسید عربی یا سکی من بعد منبع, منبع و فارسی بوده اگر منبع عربی بود، خب تا ازش قرار ایش خرم دارید. دارید خود, خود ولی نبود. با تمام این این آقای بسیل سال پیش که مبین هم است هم از اون موقعی فرانسا دیگر کنم نه این مدرسی یا رساله رو که این بعد می رو توکروندی اسم خات چقده، اسم چقده، عربی چقده، غیر عربی چقده، هندی چقده، سوردانی چقده تمام این کارا رو با دقت کامی که واقعای در کرده رو هم شده من یه دارم در حول سال و مطا من درس یادن نبا دویسی بسیارا بگید نبا دویسی کنم مجمش نبا دویسی کنم الان بعضی ها بودن وستاق <تصفيق> سابو می من اصلا تاریخ و مرموم استادمان ما می که یه مزار مطالب تاریخ موقع اصلا منحصرم که که که که که که که مشکلی یکی از تقامت رو، بخواهیم بروری فردوسی و زندگی فردوسی و شاهنامه حرف بزنیم و اصلاً به مطلب نفردازیم بازم مطلب داریم که هنوز باقی مونده که حرف نزدیم خیلی زیاد به همین دلیل بنده اینو خوتش میکنم و یه نظاری مطالب اساسی که خیلی مهمه اینجور میگم که چاره ای جز دونستنش نیست برای آشنا شدن با شاهنامه بعد هم میپرزین خود شاهنامه این شاهنامه گویندهش فردوسی اوسیاخ ولی میدونی که هر کتاب نظمی یه منبع نصر قبلا داره خیلی خیلی نادره یک کتاب ادبی که خود گوینده هم حسشو بسازه و هم خودش به نظم بیاره مگر منظوم های اخلاقی و همسال اینا، شرکت کوچی